اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم القارعه به نام خداوند بخشنده بخشایشگر آن حادثه کوبنده مل قارعه و چه حادثه کوبنده ای و ما قارعه و تو چه میدانی که حادثه کوبنده چیست آن حادثه همان روز قیامت است الناس المبثوث روزی که مردم مانند پروانه های پراکنده خواهند بود و تکون الجبال کل المنفوش و کوخا مانند پشم رنگین حلاجی شده می گردد اما من ثقلت موازینه اما کسی که دران روز ترازوهای اعمالش سنگین است فهو فی عیشت راضیه در یک زندگی خوشنود کننده خواهد بود و اما, من و اما کسی که ترازوهایش سبک است فأمه هاویه پناهگاهش حابیه دوزخ است و ما ادراک ماهیه و تو چه میدانی چیست؟ نار حامیه آتشی سوزان